با شاید در لغت نماشم راجب این یه تردید که که بیور به این معنی نیست و یه مطالبی گفتی که اون مطالب من درست یادم نیست اما اون چه به خاطر دارم این است که استاد من مران فوجا بود این دارند بیور و هزار میگفت و بیور یعنی دارنده ده هزار هست کجا بیور هست فاشنی چون این نام بر پهلدی را آمدن میگه زبون پهلدی میشه بیور کجا بیبر از پهلوانی شمار پهلوانی شمار یعنی سرزده عدد در زبان پهلوی شمار یعنی عدد کجا بیبر پهلوانی شمار باعت در زبان دری ده هزار یعنی اونی که در زبان دری میگیم به هزار در زبان پهلوی میگیم بیبر دستان تا زیب در دوستان گروه بود بیبر چه برند؟ نه سه یعنی ساخت از عب، افتار و دهنه و اینا در این زرین سه که میگن در حقیقت یک یعنی نمید فکر کنیم که تام این از تلاس هسته بودن روی این کرما و این چیزا اینا کار زرین میکردن زینت میکردن این چیزایی که رو سرش که بالا و دهنه که هست و جلو و هلو اینا رواشت کار داشته، ساخت داشته زینه هم همین کار میکردن و اگر یه وقتی جای جایی بخواید چیزی در این زمین ها در تاریخ حقی وقتی که شهر میده اون نطالات اون روزگار دوره سلطان محمود که همون دوره فبروتی این چیزا رو میگه که چجور چیزایی بودن به هفتان تازی به زرین ستا هم که بردن این کلمه رو باید خوند یا برا اگه بخونیم ورا مخفف و اگر اگه بخونیم ورا مخفف او را به هر حال و اگر بخونیم ورا او را به هر حال برا درست, برا یا برا درست و یا حال درست که روز بودی دو بحر بزین بنده خیال مرتفع نمیدونم خدا. این بره یک چندوم شبانه روز گرم فبر میکنم که یک پنجمش باشه که یک بره یک پنجم اگه بگم دو بره از شب گذاشت یا سه بره یعنی سه پنجم شب گذاشت میکنم حالا باید نگاه کنیم. من اگر پرتب نگردم نوای ناصر فل بسیار آدم جدیه دقیریست فهنگی اینجا فرنگیموین ندارم بعد اونطور برسونم که دانشگاه یادم درسته که که شیاره مراجعه کنم اونجایی که در مورد شب میگه آجش سه بحره شده لاجبه بله اینجا نمیشه معلوم که چند چند،, چند تا بوده که سه بحره شده تا اخیان اونو از اخیانه هم پنج اونش هیچه ملوم از کنم که آدم پیر میشه سه میکنه. عید پیده میکنه اولیش یادم گفتیم بل از کنم که در اکمان فاضی بذاریم شب بودی دو بهره بذاریم یعنی لعاقل دو پنجمه شبان روز رو سوار ولی نوره کین خواهی و مملکت داری و چی برای حرضگی دعا بزرگی یعنی جه طلبی و مقام طلبی نه از راه این جوانی داد خواستن جرول گیری از ظالم امثال نسیج مخصوض فرزوسین این از که زمینان فرهم کنه که وقتی که ابلیس آمد چرا این بابا این بابا آمادگی کافی برای که ابلیس راهش بیاد داشته چنان با که ابلیس روزی پگاه اینجا به سان یکی میتخواه سه بار ابلیس بر زحاک داره این که همینجار اینجا تو پیمارش میگیره دوباره چهار بار بعد یک بار ظاهر میشه به صورت آشپز که میگه زحاک رو تا اون روز گوشت کسی نمیخورد این گوشت خوردن آراد میدید و یک بارم به صورت که میاد هنگی وقتی آشبازه کتف زهان شمینی و ما ساز میشه بار سپوم هم به صورت پزشت میاد و میگوید که باید مخصوصتر مردم رو بدی به تا به این مارا تا پرشون این مثلا اولش چون وقت که ابلیس روزی پگاه بیامد به یکی نیک همیشه ابلیس در لباس میاد همسر اون کلاس به نظر اینجا گفتم نمیدونم گفتم یا نگفتم گفتش که معاویه یه وقتی که قابله بود ابلیس آمد سراش کرد بلندشو نمازو ترخ ازام میشه بعد معاویه چرسیز گفت آخه که تو خواهر گمراه کردن مردم تو چه مرگتی که اومدی من بیدار میکنی از خواب که من نمازم بخونم این چه کلک کردی گفت نه هیچ چیزی دیدم نماز تو چیز میشه نه؟ گفت نه، پلس اصفر کرد گفت ولی حیرتش اینه که تو اگر میخوابیدی نمازت قضا میشد و بعد که بلند میشدی خیلی ناراحت میشدی از این که چرا متصف میخوردی و ناراحت نراحت می که چرا من اینجور گرفتم خوابیدم که نوازم قضا بشه و اون هستت خوردن و اون تحصف خوردن و اون سوختن دل اون ثوابش از این نماز که تو بخونی بیشتر بود اینه که بیراد کن تو اون ثواب برید اینه که ابلیس همیشه به نیکخام میاد چون بود که ابلیس روزی پگاه یا به سان یکی نیک خواه. دل مهتر از راه نیکی ببود جوان گوش گفتار او راست پر بودیم از چاپروسی کردن و جوانم به حرفش گوش دادن بدو گفت مرد که من چی میکنم همچی میکنم چون میکنم،, میکنم من کارم یاد دستم برمیاد خدمت میزونم به شما بکنم چه بکنم چه بکنم, چه بکنم؟ از این بچه هم که دنبال جاه طلبی و مقام و این بازی ها بوده میگه که خیلی خوب میگه نه اول باید پیمان. پیمان بدو گفت پیمان خواهم نخست پس آسان گه سخون برگش دقیقاً یه چنین کاری رو مبلغان و داعیان اسماعیلی انجام میکردن یعنی میگفتن اول با تو قسم بخوری که راز ما رو فاش نکنی، بعد اینکه این قسم رو شش می‌خیم می‌کردن، بعد شروع می‌کردن به تبلیغ او به مذهب اسماعیلی. برای اینکه مسلمان‌ها ها رو به دلیل اعتقاد نداشتن موحد جسمانی مولهت میدونستن و با واجب القتل و اگر این بابا که داره باش حرف میزنه، گروز می‌داد که داره یه همچه حرفای اون آقای میکشتن ولی اینه که قسم میخوردن و شیش میخه میکردن بعد می‌گوه حالا من رازم بگم اینا مسائلی که فردوسی آشناس باش در این روزگار فعالیت ملاهده اونا اینا زیاد بوده دکتر زریاب که نوشته که فردوسی اصلا خودش اسپاییلی بوده و شاید به همین دلیل بود که داشتنش تو قبرتون به مسلمان چالش کنن ولی دوست من دوکر مدعوی دامغانی میگه نه فردوسی شیعه دوازده امامی بوده نظر منم همین در هر صورت مسئله اون وقتا وجود داشت میگه ابلیس کندم اول باید بخوری تا من راز پاش بخونم به گشت و فرمان کرد فرمان کردن یعنی اجازه کردن بازی منی دیگه کردن فرمان کردن یعنی فرمان بردن نکتر گشت یعنی راضی شد اینجا جا جما گشت و فرمانش کرد چون انتون به فرمود ارض کردم که فرمودن منی دستو بده. فرمان یعنی دستور فرمودن یعنی دستور روزن صحبت این که یکی از یکی بزرگتر باشه نیست حالا میگیم عرض کرد اگر یه آدم کچلو باشه اگر همسر باشن گفت بعدم بزرگتر باشن فرمود این خب نداره حالا بگیم اینو به این ترتیب این اتیکت رو رعایت کنیم اما کلمه عرض کرد یعنی جلوه داد اوات به نظر گفتم یعنی گفت فرمودن این دستور داد اگر آقایی که بزرگتر بودن دستور نباشه زمین حرفشون این درست به وحنی تختل لفتی درست نیست بگیم فرمودن فرمودن نه حالا خوش نیست این فرمان نیست بس چنان چون به فرمود همون که زهاز گفته بود سوگند هم کرد اینم چون مال اصمایی رو گفتم باید بگم که اینا سوگند و اینا میگرفتن بعد قضالی که چیزی می در مخالفت با اسماییه میگه که سوگند خوردن بر چیز باطل افل اصلا چیز نیست اصلا معتبر نیست و این قضیه از اصلش مزخرفه برای اینکه سوگند رو خودش یه است که برطور شریعت و شرع به مورد موروی تأیید هست وقتی شما قسم بخوری که کار غیر ویسای مخالف شهر انجام بدیم قسم اصلا اعتبار نداره ولی خب ابلیسه میگه سوگند خورد که رعض تو با کس نگویم زبان به تو بشنبم هر چه گویی سخان یعنی قبول میکنم میشنیدن یعنی قبول کرد به دوبافت جز تو کسی کت خدای چه باید همین با تو هم در سرا کت خدای عرض کردن می که کت یعنی خانه است کت و کده و کت خدای یعنی سابخون کت خدا و کت بانه به صورت پیش اومده در می کده و بود کده و, و امثال اینا هم کده یعنی به صورت پسابند یعنی می و بود خانه. به منی همونی اتاقه تو دوکن نوازیه سنگکی اتاقی بود به فقط برداشت، پنجره هی چیز نداشت آردارو می خالی میکردن تو تمامش رو بعد یک کسی هم بوده هم پیشکار، یه تازو هم اون تو بود این پیشکاری میادن مرد، تو یه آردارو حلک میکرد و هر سنان فیاشخال رو پیسیو میگره بعد میکشی تو اونترازو کیسه یا پیتای حلبی درازدگی روی درست میکرد که پاستهیش میگفتن میدشت اونجا اون اون, اون میگفتن کته کته همون کته تو خونه ها همون زخالدونه یه که درست که خواهی زخال نرسن میگفتن کته زغال. این کده معنیه و کت خدای یعنی صاحب اتر صاحب خونه و معمولا به کسی که زم میگرفت میگفتن که خدا شد ولیش این است که ما هم هم زبرداحت ما هم داره یه دونه اتاق داره بابا مرکه و زنکه و بچه‌ها همه با هم میگیرن میخوان این اتاق. وقتی که پسرای گنده میشه یا دختره وقتی واسش میشه دختره که خو میرسن بره که میره خونش واسش. ولی پسری از بخواد زنگ بگیره دیگه نمیتونه دو اتاق برادر و خواهر و بابا نش بگیره خوابه که اتاق می رو میخوان. اون میگن که شد یعنی خواب برای مملکت هم تحت خدای کشوتی میگن یعنی ساز رو همی کرد خواهی کت خمیل کردن یعنی؟ اون کت همینه یعنی کت برای اون نباید خمیل کرد باید باید توی تشتک خمیل, خمیل, خمیل یعنی؟ نه به معنی اینه که همونجا پوری چیزی رو بدون راه تشریفات بخوان پورا از یه چیزی نتیجه بگیرد اون کته برنجاب بزن لوحات مازندگونی محلیز او فارسی <تصفح> <تصفح> بعد سوال نشد بده او گفت جز تو کسی کت خدای چه باید همی با تو اندر سرا میگه دو نفر که نمیشه گفت خانه ای را که دو کت مانوست خواهی کت از آنوست تو <تصفح> <تصفح> دو پاچه ها در اقلیمی نگنجم ده بردیش در گلیمی به خوص دو ها در اقلیمی نگنجم میگه تا تو هستی این کسی دیگه اینجا چی است هست که با تو اینجا باشه؟ چه باید پدر کش پسر چون تو بود یکی پندت از من بواید چنون زمانه بر این خواهده سال فرق همینی دیر ماند تو اندر نبود نوردیدن یعنیه لوله کردن و نورد نور دیدن و نوردیدن لوله کردن و معمولا کاغذ رو قدیم توانه میکردن پاکت هستن نوشتن، نور رو لوله میکردن و بعد اونجایی که این لوله تموم میشد این محله، این اینجا که تموم میشد یه موم میشست و میکردن، از اینو میدازم به صورتی لوله و در نوردیدن یعنی در هم پیچیدن رو خلاصه مرحف کرده میگه که روزگار بر این خاجه خیلی طول داده خیلی زیادی مونده تو دیگه در هم پیچتومار زندگی شده فکرش بگیرین سر مایه ورگاه او گاه روحنی تخته این تخت از تخت فرمایه رو و تحت با رو از او بگیر فرازی بدن در جهان جاه و. یه مقداری هم که تو جوانی پهلوانی نمیدونم پیچه جای خوب در فرداری بزرگ بخواب بکنی این پیر مرد اینجا که بخش گذشتی دیگه حالا وقتا مردنش دیگه کنکشو بکنی بیگه بیشت ترجیب این گفته منتاری به جهان را تو باشی یکی کت به به جاوردن یعنی اجرا کرد چه حال بشنید و اندیشه کرد یه خون پدرش رو درش پرده در اولین بار بود که فکر این که پدرش بکشه ابلیس به اون این فکر رو ارغام کرد خیلی ساعت ناراحت مثل هر کار بدی که آدم دفعه اولی که میخواد مرتکب بشه خیلی ناراحتی دارد ولی بعد کم کم بعد ویجدانش خواب دارد حرص <تصفح> کنم اینه تو زنهاد بشنید اندیشه کرد خونه به در شد داشت برزه در به ابلیس گفتیم سزاوار نیم درست نیم سزاوار سزا تلافی است. وارم پتمند ریاقته سذابار یعنی چیزی که به صورت سذا آدم بتونه به کسی بده یعنی سذایی پدر من این نیست که این کارو باش بکنه ابلیس گفت این سذابار نیست دگر بود. یه چیز دیگه بگو یه توشناهی دیگه بکن کین این کینو با که کی بدون علف نوشته کین یعنی که این به ابلیس گفت این سذاوار نیست دگر گو کین از در کار نیست از در به معنی شایسته و سذاواره از در کار نیست یعنی قابل اجرا و قابل به کار بستان نیست افته بودش دو تله و دو گفت اگر بگذارید این سخن به تعبیر و پیمان زبان بماند به گردند صوگند و بند شویخ رو ماند پدر تنجب ارجمان یا ای از این چیز بگذری از این حرف من بگذری اولا که قسم بر عودت بر زمت میمونه الان برای خوش کشدن پدر که قسم نیست خیل اصلا شرط چیز نداره که به گردن میمونه این سوگن و هم مهمتر اینه مهم اینه که تو خار میشی و پدرت ارجمن اون هست و اون وقت خودش احیانا در این کلام ابلیس یه تهدید کچولوی هم هست که ممکنه بود برای که تنشستی کمیسیون کردی واسه یک کندن کلک او شویخ ها رو ماند پدر تنجمه هر جمعه در مرد تازی به دام ماه برید. این هر گرفتش در اختیار خودش چنان شد که فرمان او برگذید روشن بپرسید که این چاره با من بگو چه رویست راهو بانه مجوز گفت خب حالا چیکار کار کنیم گفت تو چی؟ ام رزد به دیکافیه. دو به دوبار من چهار سازم دامتره. به خورشید گفت اربا پدرت کاری مثلا که سه به خورشید بارف شکت بشه. به خورشید سر بار فعالم تو. بگم دخنش. آن پادشاه در آن در یکی بوسن بود گران مای جای قرارمون موقع یه چند داشت که درش تو خونش ما رفتم آچار را در سرای. اینه. می‌بخشید. را در سرای، در اندر سرای تعجب کردم یعنی تو خونش چری سره بوستان تو خونه‌اشوامیشه. ایمان پاتسار در under سرای یکی بودن بود گران مال جاد گران مایش شبگیر برخاستی شبگیر یعنی صبح سحر. شبگیر صبح شبگیر اصلا نیست صبح زود که انتظاری که گران مایش شبگیر برخاستی ز بره نیایش برای اون یعنی خود چهاماده میکرد برای نیایش فروتن بشه به افته به و پرستنده با او نبردی چرا پرستنده گفتم به نظارم که پرستیدن ونی خدمت کردن و پرستیدن صفت فایلیش میشه پرستنده یعنی خدمتکار پیش خدمت در شاهنامه هنه جا پرستنده به همین معنی ونی خادم و پیش خدمت حالا <تصفيق> از <تصفيق> این پرستنده صفت فایلی است یک جور صفت فایلی دیگر هم داریم و او صفت فایلی است که با علف و میاد اصلا علف که در میاد گاهی صفت فایلی است مثل خریدار. خریدات یعنی خرید کننده گاهی صفت مفعولی است مثل گرفتار یعنی کسی گیر افتاد. کن گوه هم اسم مستری مثل رفتار و گفتار و کردار من یه رفتن رو گفت هر فتاش با الفوری اما مسئله اینه که این مساوند الفوری آخر مستر در میاد خریدار خریدن نون مستری رو مندازیم الفوری در میریم اینجور خریدار گرفتن نون رفتاری رو میندازیم الفوری در اینشون گرفتن رفتار گفتن گفتار دار. خب از پرستیدن باید دستورشیم باشیم پرستیدار پرستیدن نونشو میندازیم الفوری در میریم چه پرستیدار ولی به دلیل اینکه این, این دراز بوده به جای اینکه این،, این صفت رو علفوریه رو از مستر بسازن، از فعل عمر ساختن خواست دیدن از... از در حالی که اگر مثلا گرفتن رو از بسازن، گرفتن میشه گیر باید بگن گیرار یا گفتن گوی، باید میشه گویر نمیشه که گفتار و کردار رو یا کردن کردار، باید میشه کنار خون با حاله فروش هیچ کلون نیست باید پرستیدن پرستیدار نداریم پرستار داریم البته حالا ونیه اونم ونیه خادم بکنه میره منطقا خادم محسوس مال مریض خونه رو میگن دیگه. یا یا کسی که مربی بچه هست سروتن بشستی نفتی رو پرستنده با اون نوردی چرا. مرد از شدت نجابت و انسانیت که یه خدمتگاه هم بیدار کنه که باش دنبال این رو بیفتم اون وقت شب و همراه او چرق ببره خودش رو رو بلد بوده هر شب میرفته بنابراین کسی رو با خودش نمیبرده براور وارونه ابلیس با وارونه معنی ملعون و واجگون و واجگون هم همینجور معنی و ملعونه و اما اسمای خطی قدیمی شما اگر ببینید من خیلی در پاریس اسمایی که بود می دیدم کسانی که باشون مخالفاً این کاتب داشتی می نوشته مثلا شیعه بوده می‌رسیده به اور این کتاب رو می کرده این آهار رو عظیمار می نوشته بعد بر می گشته باقی من یا عثمان یا مثلا ابلیس این رو بر میگردون در از اون بعد می نوشته این وارونه که میگه یعنی واژگون وانی مطرود و ملون بسید به یک کمشید میگن بله حالا این که وارونه است واژگون. و بعد من این کتاب چاپی اخیر دیدم کتاب منطقل آمال مال شخبات قومی که اون کاتبش برد که تخط نفصلید این کتاب نوشته نوشته بای گوابور شده، چاپ شده خوب کاتب هم این گرفتاری رو ظاهره هم داشته هر جا این اسمان آمده همه رو به خود زحمت داده این سطحه نیم براقی بزرگ هست اینو برگردون دیگه اونو نوشتیم برهاد وارون ابلیس من منشینه برابر وارون ابلیس باند یکی جر چهاش بره بر بکنم در راهش چهاش سر تازیان می نامجوی جوی یعنی مرداد شب آمد توی باغ و نهال درخت چراغ به نزدیک آن جرف یک کا یک نگون شد سر بختش پاشو گذشت را اگر یادت باشه رستم هم به همین ترتیب کشته میشه یک کا یک نگون شد سر بختش شاه به چاه اندرافت و پیش کرد ها شودان نیک دل مردی از سفرت یعنی راست سودان معنی راست پس ابلیس واروم نه آن راست چا به خاک اندراکن دعا گندن منی پرگردن دلم آکند از مهرتوس یعنی پر به خاک اندراکن و بسفر را قسم الخاق چلا رو شها رو پر کرد و رفت بکارش و بعد حالا این بعد از اون میگه که و هر نیک و چهار آزاد مرد به فرزند بر نازده باد سرد همین پروریدش به ناز و به رنج به دو بود شاد و به دو گنج میگه نزشته بود که باد سرد این بچه این بچه ناپاک سب و سر. وزیر. شادیش همه با او بود او رو با رنج پرورش داده بود به او شاد بود گنج شده او داد چنان پتگوهر شوخ برزند او شوخ به عنی پرود بقیه و پررو صفت بدی اول شوخ به عنی پررو به کار رفته بعد به چرک کرکتن دلاک از تن آدم میگیره به کار رفته از میگم دلیلش که حالا ونی آدم ظریف و بزله گوه تایی چیه آدم وقیه رو اولا آدم ازش سعی میکنه پرش به پر این نگیره یک با آدم میکنه چیزی میگه یا آدم باید سیویل بذاره یا باید باش گذکیری کنه هر درست نیست یعنی که بهتره گفت که چند بار این مثال گفت رو گفتم گفت به روبای گفتن که تو چند تارا برای دار رفتن از دست سگ بلدی گفت خیلی شاید هزار تا همون قیهتری نشونی که نه ببینم نه اونو ببینم آن آدم وقیه پررو رو هم آدم سعی میکنه پرش پر نگیره به همین دلیل از شوخ احساس نفرت به وجود شرک تن هم همین این حالات داره یعنی نه تن هم مردم دیگه چرک تن آدم برد چون میاند خود اون بابام که تنشو چرک کردن دیگه اجرا داره که دست رو چرک تن خودش بزن توی یکی از سکتا اتار ها از بوسعید مهنه در همم بود خواهانش گفت خواهان یعنی دلک همون این که خیام میکنه به خدمت آدم خواهانش گفته از مرزی خواهان بود شوخ شیخ ها در بازوی او جمع کردن جمله پیش روی او پانوهایی خبر ندارن ولی آقاهایی که همون رفتن و کیسه کش داشتن میدونن که در لاکه پشت کیسه میکشید پشت کمانون چه کار میارد بالا میذاشت این بالا بعد که می شروع میکرد به دست و کیسه کشتن یک خود سری که سر میارد بالا همون شوید کن میذاشت اینجا بعد میتکندش که اولاً ببینین که من خدمت کردم خوب تو بی <تصفح> که فکرش دارم دو که آقا تنتون خیلی چرک بود دوتا تاییز بیدن همون بب این از که می در اون حال از شیخ پستید که جوان مردی چیه شیخ هم گفت جوان مردی آره تا اینه که چرک تن رو مردم جلو چشتیم <تصفح> بعد بعد به دلیل نفتی که آدم از آدم وقیه داره چرک تن رو هم بهش گفتن شوخ اما چطور شده که شوخ که حتی در دور معنی منی بروز شوخ چشم یعنی وقیه و بروز قرض کنم که حافظم همون دو چطور شده؟ منی آدم خوشمزشته دلیل اینه که آدمی وقیه درسته که آدم تحیم میکنه که خودش تماسی باش پیدا نکنه برای مردم عادی و خورده اثاری کسی دارن روی شرمگیم بودن، روی ملاحظات دیگه چیزی نمیگن، دلتنگیشون رو نگه میدارن وقتی میبینن که این آقای پر رو طرف رسید دلشون خنک میشه به این دلیل کم کم این معنی بعد تبدیل شده به معنی ظریف و بزدگو اینا پر رو دیگه، یعنی هیا چنان بد و هر شوخ فرزند او نجست از راه شرم حیبند اوی میبین که شهر این تو شوخ یعنی بی شرم چنان بد و هر شوخ فرزند او نجست از راه شرم حیبند اوی به خون پدر گشت هم دافت با افت در دانه این داستان داستان یعنی زرب المثال یکی از معانی کلمه داستان زرب المثال چون همینجا داستانی در به نیست همچنین از افسانه افسانه هم یه معنی زرب المثاله توی کتاب ترجمه البلاغه آماده که افسانه هر میشی را به پای خیش میزن افسانه سگ را بزنن یوز پند دیرست افسانه یعنی زرب المثال ارز کنم که به خونه پدر گشت هم داستان ز داناشم می دستم این داستان که فرزنده بد کرد شود مرشیر به خونه پدر هم نباشد و وگر در نهانش تو هندیگر است باید از والده پرسید هجوهنده راست با مادر است میگه یه قضیه در پنهان مطلب دیگه ای باشه یعنی مادر ایشون کرده باشه اون از خود او و طریقات محلی کرد بله وگر در نهانش دخندیگره است تجوهنده را راز با مادره سبک مایه سبک مایه یعنی همون که حالا میگیم بی مایه کم مایه ترکیب سبک مایه در مقابل گرام مایه است سبک مایه که بی داگر این چاره بگرفت گاه بیدار. چاره کم بار اینجا گفتم بر شانه بیشتر به معنی هیلگری و چارنشی بعد به کار می همینجا توی این چیز میگه ابلیس بهش گفتش که به دو من چاره سازم برام نه میگه کلکی سوار میکنم پیلورد و از ساره به دو من چاره سازم نظرش خیلی هم چاره مفهوم پیجورتیف داره مفهوم خیلی پسندیده نداره فبک مایزه ها که بیدادگر به دین چاره بگرفت گاهه پدر تختش به سر نهاد، افتر تازیان بریشان ایشان ببخشید زودو برای برای کردن مردم یه مفتاری مثل همیشه که سیاست دولت ها بوده مثلا نون رو میکردن یادنه که در از بیستویک آزر اولین شلوغی بود که بعد از چهریوری 20 شده بود و مردم شلوغ کردن و تو مجلس و سر و صدا و حرفا و دوره قرام هم بود و تنگیه سخت نون و اینا بود نون اصلا گیرونه میامد و قحتی بود و متفسیم تمام گندوار میبردن نون سیلو یه چیزای ما بود چه ساعت پنگ ساعت مثلا باید بایستن برای اینکه تو صرف برای اینکه منتظر نون سیلوی که قویه یه خوردن بود گیرشون بیاد شلوخ شد و ریخنم تو مجلس در بیر ساعت جلسه علانی کسی نبود خودشون ریخنم تو مجلس یکی یه دی رفتن پشت سندلی باکرار نشستن و یکی یه دی سر جای بوزران نشستن و یه دی رفتن سر جای رئیس مجلس و عبدالغدیر آزاد رفتون پشت تریبونشوی گروه ناط کردن بعد سوال میکرد که این همچینه همچینه همچینه نمیدون دولت همچینه مردم از گرونی اصطور اومدن پدرشون درامده پیر زنی هم اونجا این جماعت باعث بود روی کرد عطل قدیر ماه سرشنان همه سفید بود رو کرده اون بقل دستیش کنم خب نه نه این پیره مردا رو نخست وزیرش بندیگه نون رو میکنه <تصفيق> <تصفيق> این سیاست دولت بوده که از این قبیل کار ها موقع روح کار میکردن و جرد نظر مردا میگه به دیشان ببخشید سون روزیان نشد سر جاش محکم چه چون پیوسته دیدان سخان وقتی کارش درست شد و اون سخنش کورسینش هست یکی پنده بد را نو افغان بون ولکنه مواله که نبو که گفت که بچه ها بردن مکتب آخون گفت گوه گوه الف نگفت دوباره گفت او الف نگفت باید باید او الف گوه ساله او الف نگفت زودش نگفت هر کاری کن. که... آخه تو چرا نمیگی آخری این ها چوب خوردی؟ کدک خوردی؟ یه علف نگفته جون راحت کد؟ گفت نه جونم راحت نمیشه، گفتم علف میگه بگی بی دیگم بی میگه بود بی من از حالا ابلیس هم که نه ایمده بوده که اما سر تخت پدریش بشوند راهشو بکشوند بره روی کار وقتی این کار روبرا شده یکی پند بد را نو افکان بون این نو اینجا قیده یعنی جدید شروع که پایگزاریه یه توصیح بد دیگری به دو گفت گرسوگ من تافتی زگیتی همه کامدل یافت و اگر به طرف من بیایی من کبیت گفتم دیدی زگیتی همه کامدل یافتی پهر مازیه به جای مزاره حتی این یلب و کار میداره. یعنی اگر به صورت من بیای همه اکام دل‌ها رو خواهی یافت منطقه ها مزارع هیچوقت بد ایگت نداری من وقتی بگم هفته دیگر خواهم آمد اینجا ممکنه را سرمه بخواهیم و همین دلیل میکن عقد نسخ باید به سیخه مازی باشه بگی من تو رو تزویج کردم با تو ازدواج کردم زنم بگی من قبول کردم در حال که مال بعده میگن برای اینکه مازی منجز حتمیست میگه که اگر سوی من تفتی زگیسی هنه کام یافتی یعنی قطعا خواهی یافت اگر همچنین چی جون؟ مازی به جای مستقبل ما اگر همچنین فرمان کنی فرمان کردن یعنی فرمان بردن نه پی چیز رو، یعنی حرفن رو گوش کنی و پیمان کنی جهان سر به سر پادشاهی تران یعنی پادشاهی جهان سر بعد مردمو، بد و مردم و و ماهی تران روشن دادم که صحبت کردم قبلا با غیر تو این کرده شد ساز دیگر گرفت یکی چاره کرد از شگفتان شگفت میگه یه لی باز کلکی سوار کرد که میونه چیزای شگفت تازه این شگفت این توی شگفتان تازه این شگفت چی جوانی برای راست از دیشتن. به صورت جوانی در اومد سخندوی و مینادل و پاکتن یافع محترم جوان خستیمان زیباز خوشبیان تحمیده همیدون به زهاک و انهاد روی نبودش تو از آفرین بود. عرض دادنش جز بیکرد معدب مرتب منظم جوان بدون گفت اگر شاه را برخورم یکی نام بر پاک خالیگرم خالیگر یعنی آشپاز میگه اگر قابل شاه باشم و اگر لیاقات خدمت به شاه را داشته باشم من آشپاز معروفیم بشنید زها جلبش کرده بود دیگه خوش اومده از این چون بشنید زها حد وافتاش به بار خورش جایه افتاش خورش یعنی غذا از خوردن خوردن خور ریشه فل شینه افتری و با, با فل هر میاد خورش کنش روش خورش یعنی غذا یعنی خوردن شبشنی زهاک بنباق باشد زبهر خورش جاگه صافتش کلید خورشخانه پادشاه به دودا دستور یعنی دستور دوم زهاک اول دستور که مقام ایشون محصولیت آشپسخونه کلید آشپسخونه را وزیر داد بهش یعنی کارش بهش تحویل داد قابان نبود آن زمان پرورش که کمتر بود از کشتنی ها بایش بشر ابتدایی کارش شکارگری بود شکار بسیار کار مشکلی بوده اولا باید مواضح باشه خودش شکار نشه دوبام که پای برهنه این سنگ و کلو بدون اصله فقط با چنگ و دندون آهو رو می‌گیره بخوره این کار آزومی که نبوده که ولی یه مقداری بالاخره کله‌اش کار می‌نداخته که می‌تونه اینا رو همین کنه و بگیره و چه بکنه وقتی گوش‌ناش می‌شد یه مزداری می‌پاد دفعه اینکه میوه بخوره و علف بخوره و برگ درخت بخوره و اینطوری خاصش شیر وقتی میاد زندگی کشاورزی شروع می‌کنه دیگه مستقر شده بوده، و خونه داشته و زندگی داشته و خصه رو از باستان جمچید گفتیم اینجا دیگه کشت و کار میکردن و این است که احتیاجی به این که برن و شکار بکنن بیارن نبوده کمتر حیواناتی هم که رام میکردن بیشتر توجهشون محطوب از بسکی من شیرینم یه مگست دو بردن اینجا بله حرش کنم که اینا اگرم اگر هم رو به اصطلاح نگه میداشتن برای استفاده از محصولات و فراورده های ادامه بوده چند دیدی که در پدرش میگه که وقتی از اوزداران میشو گاه دوشا و اینا رو که هر کشی میخواد بیاد و بعدم هم دوستش و بعد سایر مسائل این که به طور مرتب یه مقداری حیبون رو بیارن به کشت آرگاه و تلکچه بکنن به این صورت نبوده در حالان که الان این مرغای قد رو فقط برای این درست میکنن که اون سرشو ببورن هیچ هیچ مستفی این از میگه ای این نبود فراغان نبود آن زمان تر برش. که کمتر بود از کشتنی ها خورش وقتی یه گاقی گوزفندی دیگه داشت میمرد مثلا بشش میکردم زهر گوشت از مرغ و از چارهای گرشگر بیاور یکی کچه اولین کار اینکار این این است که انواع اصلا گوشتا برشا برشا برشا برشا برشا خونش بپرورد برسانش هنوز کلمه خونخار به منی قصدی قلب و بیرهم و اینا در زبان ما هم زبان عوام و هم زبان ادب به کار میده و این نشونه یا اعتقاضیست این اعتقاض این که تصور میکردن که اگر حیبونی یا انسونی خون بخوره این بیره هم میشه و خوخار میشه میگه می این حیبونات رو به خون پرورش میداد بر اینکه وقتی اینا رو میده پادشان بخوره پادشان قصی و غلب و بیره حالا اینکه این سه رو داره صحت یا حد او که خونم یه بافت اسمی سکایر بافتای بدن و در اینجا هم شاید باشه من در پاریس بیشتر می‌دونم یه نو سستایی که بشمیم بودن بودن تو خون منحقل شدست میارن و میپذن میخورن مثل باگزیس هیچ دیگه هیچه ولی میگه که حیوانات آورد از مرق و چارپا اینا, اینا رو به خون پرورش به خونش پر بپرورش بستان شیر بدان تا کند پتشار و دلیر باز این دلیر اینجا معنی پیجورتیف بری برانی چرا؟ برای اینکه سخون ارتگویت فرمان کند به فرمان او دل گروگان کند برای اینکه بعد حکم میفتید به این بگه خوان ها فرمان کند و فرمان و دل گروزان کند خورش زرده خاید آدشن خود زرده تخمه خاید درست به عنی تخمه و هنوز در زبان امروز ما کلمه خاگینه از همینه خاگینه خوراک زده تخمه از همین کلمه خاید این تا فردوسی رو که بینید هست در نظامی اونجا هم هست میگه که توخو مارق طلاب باید میگرفت دارب از یونان بعد در موقعی فقیق اسکندر که بود گفت شدن ما گوخای ضربیم نهاد مرگی توخو مارق طلاب مرد و رخشم فردوسی میگه که وقتی وصفش میکنه میگه سیه و تند و پول آسون بازم به معنی هم تخم خورش زرده خواهی داردش این که اینو عادیش کنه اول گوشت میزدهش اول برین که عادتش بده به خوراک حیوانی از زرده تخم آشور کرد اینجا باید بگم که هنوز صوفیه به منظوری پیدای کردن صفای باطن رای وقتی چل می نشینن چل روز حیوانی نمی خورن حیوانی یعنی پنیر هم نمی خورن شیر هم نمی خورن حیوانی یعنی این. نه اینکه گوشت نمی خورن. حیوانی نمی خورن خورش زرقه خایر آداش که این قسیل اکسش عکسش همون صفای باطن که هنوز صوفیه معتقدن قدم داشتش یک زمان تند روز بخورد و برو او آفرین که سخت باید تخمه خوشمزه است خوشمزه تنین قضاهای دنیا حالا کولیسترول داره کسی بر نیست بلی تخمه انواع اقسم خوراکاش از پخته و از نیمروشو از حاگینه و از غذاهایی که باش درست میکنن و کوکو و خوشمزه است به بخورد و برو آفرین که سخت مجه یافتو و همون مزه است صورت قدی میشه خاندش برانیک آن ایک بخ مجه یافت یعنی به درنش مذکه و از لطف کرد بش تفقیل کرد بش چون این گفت ابدیس نیرنگتاز که جاقیدی شاد و گردن فراد که فرداد زنگونه سازم خورش که از او حایدت سر به سر پروره فردا قضایی رو به آلم تردیم کنم که دیگه همه چیزی از ون نریده باشن برفت شب سگالش گرفت که فردا از خوردن چه سازن بشگه اینجا چه این وضع پهمون شده و ام دوباره بخونیم بنده بگم خدمت دوستان که ما اینجا از آقای نو یا آقای سپن بایش میکنیم بخونن بعضی هاشون بازم مطالعه نمی کنن. میان اینجا ولی اگر داق طلبی برای خوندن باشه بنده از خود همه هیچ فرق نمی کنه دوستان هم بهتر است که بخوانن بله این که یه ذره غلط باشه اشکال نداره. بهتر است که بخونن که باشه باشه ترتشون بیریده و خودشون شروع کنن به این کار اینه که باز ممکنه به شیوه همون شیوهی که در کلاس ما افرز که اونجا گفتیم به لیستی از کسانی که دافتال ها بخونن هم بدن کم به تحصیب از یکی که اینا خواهش کنم حالا اگر چه دیره عین همین کار رو در مورد شاهنامه اینجا عزوزان کرد و چون حالا دیگه چند دقیقه در به آخر درست نمونده این کار رو برای جلسه بعدی که بنده شخص را شدن، همون اول آقای قنبری سابقه این کار خوب دارن، بلدن این کاغذی تحدید میدن و همجورد دستگردون میکنن بین این همه علمه که هر کنون دابطاله بخوندن هستن اسمشون رو بینیسن، بنده به تحدید میکنم، اونا بخونن خلاصه اختصاصی و آقای نوم یا آقای سفن نداره به هیچ وجه حالا به هر حال بازم یه چند بیتی آقای نوم زنهاش بک یه روز چون گنبد لاجبر که اجازه بده که مردم رو زمین یعنی زنین دا از از مردم خالی بکنه و قربانی‌های های اون مقبول نیفتاد و رد ای کردن میخواهشو اینه همین اینجا میگه که ابلیس از همه این بازی ها نظرش این بود که پرداخته پرداختن از رعنی خالی کردم. پرداختن به اکسش شد رعنی مشغول شدن یه من دل از مهرتو واقع نپرداختن یعنی دلمو از مهرتو خالی نکردم و به مهر دیگری پر نکردم نازنی نا تو دل از ما به که پرداختی پرداختن از یعنی فارغ شدن یعنی خالی کردن اگر چیز باشه صبری که بود ماهی سعدی تمام شد سختی مکن که کیسه به پرداخت موشده یعنی خالی کردن پرداختن از یعنی خالی کردن ناز، پرداختن به به معنی مشکول شدن دقیقه پداخان از یعنی پارخ شدن پداخان به یعنی مشغول شدن ضده هم و در عربی هم این این هم رغبت کردن از یعنی <تصفح> رو برگزونده رغبت کردن به یعنی مایل شد یه حدیثی از پیغمبر اکشان نقوم میکنن ان نکاحو سنتی فمن رغب و سنتی فلایی سمین چون وقتی بچه بودیم تا شروع بودیم و عادتون هم خیلی خوب نبود رقابت می‌کردیم، رقابت می‌گرفتیم. بعد فکر کنم که رقابت مصنوعی فلیفه ملی یعنی چی که رقاب بکنه به فکر که باشه. هیچ فکر نمیکردیم که این حرف اضافه "هن" به معنی هست که آمده است معنی رو به کلی تغییر می‌ده. معنی حدیث این است که نکاح سنت من است. هر کسی است سنت من رو برگردونه از من رغبت از برخلاف رغبت دیگه همینجور از مشغول بودن به و مشغول بودن از سعدی می جهانیان به مهمات خیشتن مشغول به مشغول یعنی سرشون گرم. مرا به روی تو شغلی از جهان شاخل یعنی به روی تو مشکولم از جهان فارغم جهانیان به مهمات خیشتن مشکول مرا به روی تو شغلیست از جهان شاغل که من به حسن تو ماهی ندیدم طالب که من به قد تو سرمی ندیدم مایه این پردخت پردخ ماند زه مردم جهان یعنی دنیا رو از مردم خالی خب ارس کنم که اینجا دیگه حالا نمی رسیم که فقط که ملازه می‌کنید من چند کلمه اینجا بگم در اصل قضیه که اول از تخماف شروع کرد بعد از گوشت مرغ که لطیفتر و الان هم به عنوان گوشت سپید به اصطلاح شیستره کم و نمی‌دونم دونم کنتره. از کپ و تذرب ستید و اینا آمد چیزی ساخت و بعد اول کپ و تذرب بعد مرغ و بره و روز چهاران پشتماع از گاب راسته باب و فیده باب و زفران و فاید اونجا جالب تغجره که میگه که زفران و گلاب و می و مشک برای آشمالی کار بود یعنی حالا هنوز که من همه معنی نکردم سگاریدن معنی فکر کردن ولی فکر کردن در کار بد حالا دارم حرفه کلیش میزه چیز نکرد ظرفه اونو من الانم میبینیم بابش الان در خوراستان ما نیست ولی من در جوانی یاد دارم که پیرمردی بود چلویی در کوچه پشت مسجد جمعه هر حالت که درویش بود و یه خاصی داشت و کارهای خیلی خوبی و یه دست خیلی مفصلی هم نداشت ولی یه ادهی میشنختن و میرفتن پیش این این چیزهایی که مصرف میکرد همه درجه یک روخان درجه یکی مشایی کبه هم نداشت خورش داشت و چلو داشت و اینا همه جنسایی که مصرف میکرد بهترین نوش بود و این برنجی که میداد بوی گلاب میداد جای دیگه این این نهید بودم مرد وقتی که چلو رو درست میکرده گویا تو آبش موقع جوشندن برنج میخواری گلاب میریخده که برنجش توی گلاب داره و اون روز به نظر من دلپذیرم بوده لازم در زن باید بگم که قدما هر هرچه, هرچه به قدیم میریم به همینجور که رنگ های کندو دوست داشتن افریقا در نظر فتح فرنگی پایین داره نرخاشی درشت و پررنگی اینا در حقیقت رنگ پریدر و رنگ کمرنگ رنگو یا گل رو نمی بینن چشمشون تربیت نشداری همچنین هم در مورد تعم قلت هایی که بیقدر سطح فرنگشون پایین داره خیلی شور خیلی تام خیلی چرپ اینه باشو مرزه و اتریدیات من هم اینطور من بچه بودم بهترین اتری که مورد نظر بود عطر و کاشون الان حسن مستفت مداریم یعنی سردرد میگیره یکیسی بزنی شیرینی رو شیرینی رو در پاریس اگه باقلبا میدادی به کسی یه ذری که پرامسردی درمیزد میگفت ست خوب نگم زیادی شیری نگم زربی آبانیه که زدن نوادی مثل مشک با اون بسیار بستیار که قبلا نهاز کردم اومه و گلاب و زحفران و اینا این مال اون دوره هست حال میگه که زعفران و گلاب میداد و بعد هم زحاک از روز اطول سر کنخورد رو تفرد به نهر این بابا و بابا هم بعد از که خوب اینو جلبش کرد بعد کلت و دستش داد که انشالله برای جلسه بعد اینو نید در مورد پیغمبر اکشم هست که شب تولدشون که کسا شکرد دونم چه شد و چه شد و علایم ظهور بود و آشکار شد اینو همه برای همه انبیا هست برای بزرگان هم هست از جمله فریدون یکیش اینجا این خوابی که این است که فریدون خواهد آمد و اون رو چیز کرد تمام تشریفات رشتیری زنهاکم به همین ترتیبی که اینجا میگه که گرزی به شکل سر گاب داشت سه تا برادر بودن برادر کوچیک آمد اینجا بازیر نکته دیگر و جبورم حرض کنم اینست که در ساید هزار تا افتانه. شما پیدا بکنید که درش داستان سه برادری و معمولا این سه دو دوتای بزرگتر خبیص و ناجمسند و سه خوبه در گاهی سه موفق میشه مثل داستان فریدون و گاهی سه از وین میره مثل داستان ایراج ولی در هر صورت وقتی سه برادر هستن حتماً, حتما برادر سوچکتره که خوبه بود بر حقیقت قهرمان داستانه به دو عنوان قهرمان انتخاب شد. اینجا هم میدید سه برادر اومدن و جذبون آمد و دوار پیشید یعنی با تصمه با چه هر سر تو پای او رو بست و دستش هم با ذهب محکم بست و پا لحنگ انداخت و گردنش رو بردش بردش به سوی دماوند و مردم دنبالش نمیدن اینه ماجرایی که اصفا افتاد و با اون گرزن زد تو سرش رو مخواست با یک دیگه بکنه نداهش رسیده بود که وقت مرگ این هنوز نیست این است که بردنش میگه فریدون بردش در سو دماوند در بندش کشید و اونجا در بنده و در آخر زمان زور خواهد کرد اینه در جال و بسیار خواهد به وجود آبورد و مردمون بسیار خواهد کش و هموق از جمله جاویدانانه و الان به خواب رفته و فره ایزدی وقتی از جمشیف در سه نوبت شد یک نوبت به اروسی گرشاست از خواب یاد میشه و کشنده زحاک گرشاست برد از روزگاه این است که در کتاب گرشاست نامه عصدی پادشاه برموندوا در سه آثر دوره زندگی گرشاست خود زحاکه برد بگذاریم حالا برد این که این یه تمی ایست یه برمایه این مسئله که آدمی که میخواد بیاد خبلا مجده ظهورش داده میشه یا خواب دیده میشه یا مرجمان پیشتیلی میکنند یا اخترشناسان یا حادثه اسفان مثل اصلا اسفان نه هست راجع به قصه ابراهیم اون قصه عوامانش رو اگر بخواد کتاب و تفصیل داستان این رو باب شمخ و برگ مفصلی نوشته یک کتابی هست اینجا الان با آقای بیرون صحبتش بود یه کتاب دارن عربا به نام گرت انتر انتر شاعری بوده از شاعرهای دوره جاهلی به نام انترتب مشداد العبسی این انترتب مشداد پهلوان هم بوده و پهلوان ملی عباد و دختر همونی داشته به نام عبله که این امو با این انتر محافظ نبوده و دائم این دختارو که نیش میکشده از این من میبرده و از اونان میبرده به هزار روز چاره هزار روز کلک میدهده که دست این به انتر نرسه انتر همین رو خانستان میکرده سرگذشته تفصیلی انطر تقریبا دو بار شامانه تزوز اگر بیشتگیر نباشد که من دارم مستشدت به سانجای سوش ب هر جلدی بیشتر از صفحه در حوض 5, صفحه عربی ابتدای این سیرت انتر در حوض 300 صفحه به تفصیل قصه پیش این که ابراهیم به دنیا خواهد آمد و بعد چطور شد که به دنیا آمد و بعد چطور شد و بعد اون قصه ای که در قرآن آمده است که مادید و سترازید و چرزید و بعد رفت و شکست و الاخر که مانده نیست اینا همه این یه تم خیلی خیلی رایجی در افسانه ها و همیشه بیش از ظهور یه قهران بوده چه در اسطوره و چه در هماسه و چه در تاریخ هم ها این تل تکرار جال میشه اینجا هم چه سال میگه مونده بود عدد چهلم از اعداد فیلی قابل ملاحظه هست چه سال که مونده بود ببین چه شد نگر تا بسر از یزدان چرا؟ در ایوان شاهی شبیهی ریاض به خوابندرون بود با هر نواز شنان دید برخواب دید تفتاق شاه جنگی پدید آمدی ناگهان پدید آمدی یعنی پدید آمد این یاد که آمد آمدی اسمش یای گزارش خواب آقای ناصر پول که شما علاقه من در دور نیم این یای گزارش خوابه و مرسوم بوده است که وقتی خواب رو تعریف می کردن که در خواب اتفاق افتاده آخر فعلاش یه دونه یه در می آوردن جایی می که من دقیقی رو خواب دیدم و گفت که من شانام رو شروع کردم به سرودن من... میگه چنین دید اینجا هنوز دید قرل چنین دید گوینده یعنی خود فردوسی چنین دید گوینده یک شب به خواب که یک جام می داشتی چون گلا دقیقی به جایی پدید آمدی بران جام می ها زدی به فردوسی آواز دادی که می مخور جزا اینه کافو سکی اینا همه یای بزرش کرد. ها. انواع یاهایی که آخر فعل در میاد اگر بخواهیم داشته باشین که سیچه هفت دار, دار یکی یای زمیر دوم شخصه رفتم دفتی دوبامی یای استمرار رفتمی یعنی میرفتم گفتمی یعنی میگفتم حسلمی لبن شخص یک یا علاوات استندار دو یا تمنی و ترجی تمنی و ترجی هر دو منی امیدوار بودنه منطقه تمنی امید ممکن ممکنیست و ترجی امید ممکنیست بگم بری کاش جوانیان برگرده این, این تمنیه نمیشه برده ببینید میری خاص شما شانور یاد بگیرین این ترکیب میشه شما یاد ولی اعداثی که اعداث ثانوی آخر اخر که با اعداث ثانوی تر یاد در میاد این چندتا تا چهار شرط یا شرطی و متعیی است جمله شرطی مثل اگر آفتاب فرایت روز است جمله اول میگم چرد و میگم جزایش و جزای از پی شرط میاد یا ای که آخر فعل شرط در میاد یعنی یایی شرطی یا دفمش کن یعنی پس شد یایی زمیر یا استمرار تمانی و ترجی شرطی و شش تا یا گزارش خواب هفته اگر این هفته شو هر هفته شو بخواهیم تو مشتتون داشتی باشین یک قضا داره خاجه شیراز بیدم به خواب که ماهی بر آمدید که از آمدی. عکس روی او سبه هجران سر آمدی. جای گزارش خواب تعویر رفته یار سفر کرده میرسد ای کاش هر چه زود در درآمدی در آمدید جای در یادش به خیر ساغی مسکین نوازمند نزدر مدام با قده و ساقر آمدی جای استمراری انفوتا به سنگ دلیگش زهنمون ای کاشتی که پاشت به سنگی برآمدی جای تمنی و ترکی ازل به زور و زر ار یعنی اگر فیز ازل به زور و زر ار آمدی به دست آب خزر نسیبه اسکندر آمدی جای شرطی مصیبی و مصیبی دیگری به شیبه آفزدی رقم مقبول طرف شاه هنر فضل آمدید هر هفتویا در این غزل خاجه هست غزل هفتو فرمین همه این هفتویا هر بشینجا بس ارز کنم که میگه به خوابندرون بود دارنواز چنان دید کتکاخ و شاهان شاهان سه جنگی حدید آمدین آگهان باز این فلم افرد شبون احترر یکی چهتر اندر میان به بالای فرب و به فرکیان کمر رستن و رفتن شافباه به چنگندرون گرزه گافتار گافتار یعنی گافتر نقالا منوان گرزه رستن درشن یعنی گافتر شافریتون گافتر شافریتون ورداش رفت مید دلیلش این از که بعد در داستان فریدون خواهید دید امیدوارم که عمری باشه بشه بخونیم و خودتون بخونیم در هر حال میدید چون دستون نگرفته میگه که یه گابی بود نام گاب فرمایه یا گاب فرمایون که این فریدون رو کرده بود مردم کشان زهاک میریزن پدر فریدون رو میکشن گاب رو هم میکشن و فریدون برای انتقام هر دو اینها آهنگران رو میخواد بعد به از پ به که من یک گرزی میخوام به این شکل به شکل سر گاف یاد گاف فرماگی و این نفلندر نسل از تایدون میرسه به سام و از سام میرسه به رستن اینه که گرزه گافرنگ و گرزه گافتار همونه که عربستن و رفتن شاه بار و شنگندرون گرزه گافتار دمان یعنی نفستنون پیش زهاک رفتی به جن... جنگ، زدی بستهش گرزه گافرنگ گافرنگم یعنی گافتفر، شکل گاف یک را و یک همین گرده که همین به سال به سرطاق پایش کشیدی در اون دو خلال صحبت این هست که هم یکی دو جا فریدون رو میخواهم سرش دیر آق کنن اصلا منطقه فریدونشون افتون ایزدی میدونسته و با عواله ما برای داشته در میاد تو مساله ها بی‌برات تو این اون دوباره در. به هر حال بودن ولی چش نداشتم باوره ببینم یکی هم این گردی که سه سال سه تا بسایش کشیدی دوال همیت آختی، همینو تو خوابهام نیت یه گذرش حال. همیت آختی تا وان تو، کشان وان از دوان از پسندار، گروه به یه چیز ها که میداد بگر ریدش از حول گفتی که همچه خوابهای نیده بود تا امروز یکی بانگ برزد به خوابندرون که لرزان شدن خانه بیستتون بگفتن کرسید رویان زجای از آن غلغل نام برکت خدا چون این گفته هاش را که شاه ها نگویی چه بودت براد که خفته به آرام در خانه خیش بدین به تشکیدی از جان چی شد یه هو؟ هفت زمین اب کشور فرمان توست دد و دیب و مردم نگهبان توست به خرشید روی همت پهدار که چون چه گفتی نماند نه نم. این داستان گرز من بشنبید چودستان دل از جان من نامید به این که خواب رو میزینه خورش توجه داشته که روزگارش آمده با این حال به فایده الغریقه یا تشب بستو به کل هشیش آدم گرفتار به هر چاره ای درست می زنه رایی که پیش پاس می قبول می کنه پیش هر جهان گفت پس ارنواز که بر ما بباید گشادن و سفرست گشادن نهان از نهو سمه خواب یک یک به دیشان بگیم چون این گفت و نامورد ماه که مگزارتن مگذارتن را راه چاره جو میگه ولش نکن همینجوری نگین زمانه سر تخت تو جهان روشن از ناموربخت تخت تو. تو داری جهان زیر انگشتری داد و مردم و دید و مرغ و پری ز هر کشوری گرد کن مهتران ز اخترشناسان و هفسنگران اختر این مهتران هم بزرگان، هم معجمان و هم افتونگران که با عواله معابره طبیعی، از این ها افتونگران، افتونگران احریمانی بودن طبعاً برای اینکه اجده ها هم خودش دیب بوده فخون سر به سر مهتران را بگوی، پجروهش پجوه، کن و راستی بازشوی نگه کن که هو شد تو بردست که کی هو شد به عنی مرگ در همین مجلس خبتم که هوش شعنی مرگه و این اینکه کاملا روشن نگه کن که هوش تو از دست کیست ز مردم شمار یعنی در شعار مردم این قاتل تو ار یعنی یا اگر به معنی یا از مختصدات شعان میگه از مردم شماره یعنی در شعار مردمه کسی که جز مردم میشمارنش یعنی آدم حسابش میکنند یا از دیوان فری اینو از افتونگاران بپرس که مرگ تو دست کیه این موجودی که مرگ تو دست اوست انسانه یا از دیوان فریانه مردم شمار یعنی دوزو دو مردم حساب کش یه جزار چیز در گلستان تعدیه میگه که یاد دارم که در دیابان کجا میرفتم و از ذات معنی چیزی با من نموندود یعنی هر چیزی که اسمش میشه گذارد زاد و راهله چیز خوراکی هیچ پرمونه از زاد معنی چیزی با من نمونده بود این هم همونه مردم شما رو از بر شمای مردمه یا از دیب و فریه چودانسته شد چهاره یهان چودانسته شد چهاره سازان زمان به خیره از بده بستان به خیره یعنی بیهوده پیده شای برمنش را خوش آمد سخون سرز پرویندو خفکند بون از این خوش اومد میگه صبح شد چقدر توصیق زیوای که هم کرده، شد تیره چون پر رضا هم هم گهتا از بوخ برزد چرا تو گفتی که بر کشور لوج و تو گفت پر خرشید یا آقود زرد سپه اوات همان که بود مو سفندان و بیده بیدار، دل بخربی کشور به نزدیت بیش آورید به گفتان جگرخسته خوابی که دید بعد هم نابی کرسن و بالاخره اصلاح میکنه یکشون اجازه میخواد و میگه که پس اگه این خراب خلاصه و این دردم کم کم کم تریزون میکنه و ما فعلت میده باید همجب بذاریم که پست داستانم نه خلاف نهد بالا که پست داستان برن بعض دورون زدن ما فرساستان نداریم که انشاءالله که عمری باشه بنده هم دوستان رو که خیلیشون داشتن هستم مجددن ببینم و اگر فرصتی بود و دوست داشتن این چهانامه رو تا قابل این هفت تا تاستان زه ها کده اصلا خیلی نکته های خیلی نکته های مهم و بسیار جالب نکته های مربوط مردم شناسی هم همثال ها خیلی چون رسمت ها هر چون بخش فریزون رو معلوم در دانشگاه درست میدن و خیلی مثال هست اینجا که آدم بگیم حالا ببینیم دیگه فراج رو بخواهد آن شاهنامه فرهنگ آمه در اون فرهنگ یک چه دارم؟ یک ده یا کمتر از یک کتابی است که اگر خداوند امروزه ده فره هستی من درباره باره بنوید ولی یه عشد عشیر او رو در یک کنفرانس فردوسی که بود گفتم دو مسئله از فره همه رو در چانه مورد برسید یکی خواب یکی جادو جادو وقتی میگن در شاهنامه چیه و خواب رو فردوسی چه چجور باش برخورد کرده که ده ها مورد خواب هست از مقدمه شاهنامه که خودش میگن خواب دیدم اصلا دقیقی رو خواب دیدم گفت اینه آره به دوستر من که این خواب خودی ساخته باشه یا دیده باشه حال دید. بررسی مفصلی در خواب اونجا کردن و اون مقاله رو که اگر شما مطالعه فرمایین این چون صحبت خواب زعهاکه این چیز میشه. ببینید اطمینان هست که این تکتیر شده اینجا خدمت رو حواله میزده دیگه. بله؟ بله, بله. خب. اگر کسی نارسیده باشه میتونه از اونجاها بگیره و هر حال اگه عکس باشه این دیگه اشکالی از اون جهت نیست. اون مقاله مطالب این اساس غضیه هم اساس غضیه باید از این است که خواب در شاهنامه ناظر بر حوادث آینده و پیشگویی میکنه اون چور که اتفاق خواهد افتاد یعنی از مقابله که اولیای دین هم بهش میگن رویای صادقه چون در دین هم دو جور رویا رو فتره میکنن یکی از و احلامه از غاست با زاد و غین و سه سه نقطه با با و احلام باهی عدتی از غاست و احلام به معنی پریشونه و خوابایی که سر دل آدم سنگین باشه یه شده عجیب غایی کاب و اینا میگن از غاست احلام یکی هم روحیه که روحیه صادقه است به قول خودشون این روحیه صادقه رو معتقد بودن که حوادث رو کسی که کس زمیر روشن داره پیش در عالم خواب می بینه که چه اتفاق خواهد افتاد و در شاهنامه تمام خواب‌های که هست به همین نتیجه منجا میشه به اسطح یکیش و اون یکی میگوید یک کسی بعد که من به جادو وادار کرد کاری کردم که تو این خواب رو ببینه به بهرام چوبینه قرارمون صبح خواب می‌بینی که فردا که جنگ می‌کنی لشت شیکت می‌خوره چه چه چه میشه و به شدت از خواب می‌پره و اگر آدم قوی نبود سرخ می‌شد در خاص ولی می‌دون من تو آنام جنگ حالا شیکت نخورده که رو فرار کنم که فوا اینکه خواب دیدم شیکت می‌خورم من بازم فوشش رو خورم بکنم تو پیش بیاد دیگه ها من برای جنگ کردم میره و جنگ می‌کنه پیروز میشه بعد می‌گیره یکی از افراد حسون خسم رو و او میگوید که بله من جادو کردم و این خواب رو من بایشتن تو بگیم این در حقیقت این استثنان تایید همون قاعده اولی و اینجا به استثنای چیز به استثنان خود خواب فردوسی که میگوید که دقیقی رو خواب میدم و چه و چه که هست این به نظرم اولین خواب باشید که زحاک می‌بینه و می‌بینه که سه تا برادران آمدن و تحقیباتش رو خوندن حالا چون پونزه از اون موقع گذشته دوباره آقای نولد کنن عرض کنم که بله اصلا بیتش شما افراد بسرمونم بسرمونم من که همه جببارم بیرونیم که چند تاکسته من اسم بردم که همه اینا و همین تعدیب اول گفته میشه که یه کسی از مادر باره خواهد شد و بساعت تو رو در هم کارد بیگیر با اون مرد جببارم هم میکنه و اینکه نزبه این ببره و چون تقدیر اختاراتی دیگری بوده نمیتونه و بالاخره کار تو اینم اینه هم کنم که میفرماید که جهان از شب پر رضاق همان گسته از تو برزد کراخ که مصدود خرشیده تو گفتی که بر کشور لوجورد بگسته از خرشید یا خوط زرد ارد کرد یا خوط زرد بیجاده بهش میگن سپاوت هران هران جا که بود موبدی سخندان و دل بخدی تو کشور به نزدیک خیش آقاید جگر خسته خواب که جگر خسته یعنی جگرش مجروح شده خسته یعنی زخمی خسته رو ما الان بشم این یعنی زخمی این معنی خسته رو که ما الان بکنم برای منده بشم کنم در افغانستانم میگن که منده شدی یعنی خسته خسته یعنی زخم بعد مسئله مهم اینجا اینه نکته جالب که خود زهاک میدونه که این اساس قضیه روشنه که با این خوابی که دیده چلکش کنده است. میگه فقط که ایکیت شما بگید بگید کیه چیه و الا ببینین اینجا میگه نهانی سخان کردشان خواستار دنیک و بد و گردش روزگار که برمند زمانه که آید به سر مسالهش هرش که این خواب نشانه از بینرفتنشه ولی چندتونش از مویدان میخواد که برمند زمانه که آید به سر کرا باشد این تاعت و تخت و کمر من جزیات این خوابی که میگم برای شما برای این است که اون مساقه روشن کنید نه اینکه که در احساس خواب گر این راد با من باید گوشد وگر سر و خاری باید نه. اگر منی یاد میگه یا باید این راد رو با من گوشد یا باید سر بنهید به, به خاری یعنی پدرتون در میرم اگر من یاد موبادان تر که لابوت اینجا فردوسی نمیگه خیلی خلاصه ولی لابوت میگه که معشوراتتون رو بکنین،, بکنین مثلا نتیجه رو من خرار بدین آزادشون میذاری که با هم اگر بحثی دارن گفت روی دارن بکنن ظاهر است فردوسی فقط متعرض این میشود که لب موبادان خوش گفت گفتاره تر زبان پرز گفتار یک بادگر با هم برست چی؟ که گر بودنی باز گوییم راست که جان هست پیکارو جان بی بهاست در ای درستش بگیم در حیان به سر خود کردیم این بابا هم که جون تویش ارزشی اصلا نداریم اگر بودنی باز گوییم راست به جان هست پیکار و جان بیبهار اگر نشنود بودنی ها درست به باید همیدون به جان شد اگه درست شد بگیم چون اون در خطره درست شد نگیم یه که بابا میگه اونم باز میگه که اینگینم میکشم سه روزن در آن کار شد سخون کسی نه یارت کرد آشکار یارتن وعنیه جرعت کردن کسی جرعت نکرد که هر رو آشکار یارت همینه وعنیه جرعت یارت داشتن یارتن نه یارت قیل مازیشه یارتن یارتی یارت یارست. و نیارستم در الاخر بلی مزارش میشه یارم یاری یارت من پیش میشه نیارم نیاری نیارد نیارم نیاری نیارد یه معنیش اینو که جورت نمی کنم یکی هم آوردن هم من پیش همی جور میشه آوردن آرام آری آره. آرد مزاری شونی نیارم نیاری نیارد بنابرایم باید توجه داشته باشیم که اگر نیارم یا نیارت آمده ببینیم از مستر یاردتنه یا از مستر آوردن که طوانیشو بفین تو روزن در آن کار شد روزگار شد یعنی گذشت شخون کس نیارست کرد آشکار به روز چهاران برا شد شد یکه خلقش تنگ با آن موبدان نمایند راه نمایند راه صفت فائلی مرک شبه ولی مرک خم نشد در دل دلیل اینکه اون جزء تحکیبیش پشت شد اگر راه نمد جلو نمیشد راه نماینده میشد راه نماینده اون گندهش می افته یعنی پساوند فایلی وقتی صفت مراکب بشیم می افته. ولی اینجا چون مراکب مرکب... است که اون ترکیبش پشت صفت آمده نی افته در شانه زیاده جاندار محمود گیرند شهر به شادی به هرکس رسانند بحر گیرنده شهر شهر میشه شهرگیر رسانند بحر میشه بحر رسان اون تسمنده فایلیش میافت نه همونجود به روز شمالان برای چه برای موبدان نماینده را که گر زنده تا دار باید بسو وگر بودنی ها به باید, باید, باید باز اگر من میجاد یعنی یا زنده باید تشریف این سر دار یا باید هر کارو بزن البته اینجا دار رو نمیدونم که گفتم براتون یا نگفتم ولی به هر حال الان مجدد میگم اگرم گفتم که دار و کلی مفهومی داره که ما امروز باش آشنا نیستیم درماری که نمونه دار قدیم فلج رو کشمونه فلیب داره دیگه فلیب یعنی دار دیگه اصلا کلمه دار یعنی درخت حتب و هر تیب زدن این بوده از که بابای مجدام میوردن سر یه درختی یه تیری یا یه, یه تیر ساده یا به طب صلی فر نمی کن. هم تیر ساده همشون. دست و محکم مخچم با تناب دستش از پشت و پاشم از جلو می بستن به اون تیر رو می رفتن. اولا خود اون سهب بستن صحب این خون رو برد می آورد به اون پاشت گانگره می شد، گانگره شد، سیاه می به خاری خار میمردیم بدترین صورت بود که از گشنگی و درد میمرد صورت آسانترش این بود که کارش کنن یا تیربارونش کنن یا خفش کنن و به این ترتیب زودتر باحتش کنن راهیان در طباشم میکنویدن ما میخیست در فلیل ایسا دیدارید که رسارو باز کردن هم بوهم میخیردن این روار زدن البته این این بوده است که کسی رو که به دار می دادن یه چند ساعتی امکان این بوده که اگر کمکی می او برسه برسه و او نجات یعنی تنوارو ببرن و از دار بیارنش پایین این زنده اصلا و شواهد بسیار در داستانهای عوامانه داریم که می بودن که تحلبانه مولی بودن و درد بودن دارد و بودنه می خواستن تیر که اسلام بریدن و چگردن و به هم در داستان های غیر رزمی که دوزار دار زده بودن داستان خیلی جالب توجهی از برواب خیلی عضو میخوام برواب در و فاوری زنان که میگه که ارز کنم که مرگ دوزار اردوان دار زده بودن جایی سری قبلستونی این دیدش یه زن جوونی اونجا داره شیبن میسون و گرید داری میسون و ودبختی و خیلی سرش میزنه اونا گفت از اون بالای دارتی خانم چیه هم شیره؟ اینا به خدا رو چی بگم این فیرمانه من من جون من بود فاطمه من بود ما عمر رو هم گذروندیم چه کردیم چه کردیم چرا چه چه عادت من بودم همه چیز من راحت من دیگه زندگی ندارم تا عمر نمیشستم که بمیرم خانم ما هر کی دست خدا دست آدم نیست تو حالا عمرت به یا اصلا نمیشه دست دستی, دستی. خودت رو بکشی علاوه حالا خودت هم بخوشی اون که زنده نمیشه آخه این چه حرکتیه وااو چون اله اینو بلکن بگی اله قسطتو تو گریتو بکن بداخلیت فراموشی هست بعد من هستم توی خواهی بکن من من راضرم زندگیتو رو تأمین کنم چه بکنم چه بکنم از این اصلا ولی جوری تو من نجات بزارم درد دنک میگه که خب من چجوری تو نجات بدم برای اینکه یعنی مرده میگه می اما خیلی کار سختیه برای اینکه توانه بیاری پایین به هم باید بریم و یه مزار راکه بریم میان میگیرن برای تو هم در اون وقت زنک میگه که این چه کار نداره که تو میای پایین شوهر من تازه خاکش کردن اونه که و اونه درش میاری میزنش به دار جای که مرده است که احساسا دقیقی طوری نمیشم گرم خیلی خوب جناب دروز کانت میکنه نو پرسن شود، تو قرد ده میرن نو بعد مرده ای دوزون ریش هم داره این بسنه میگه اینی که نمیشه جایی من دوازن این سید چرا که پایستی ریش داره من ریش ندارم اصلا، اخو تو میشم چیزی هم ده نداریم دریشو بهترش کار کنیم میگه اون که گفته نداریم دریشو میکنیم که چرا راحت نمی شه؟ ریشه تو همین کانال هم داره میره میرن نو چون دوره کامل سعادت و با اینجا هم دور تشکیل میده و زندگی ایلیخ شیرینه با ادامه میدن تا یه مدتی رو دوز ناخوشش دوز ناخوشش رو و داشته چیز داشته بیمارده اینا بعد بعد منم چطرش میزده که من بگه چه بکنم ببین چه روید.